حکایت تنی چند از روندگان در صحبت من بودند، ظاهر ایشان به صلاح آراسته، و یکی از بزرگان را در حق این طایفه حسن زنی بلیغ بود و ادراری معین کرده، تا یکی از اینان حرکتی کرد، مناسب حال دربیشان، زن آن شخص فاسد شد و بازار اینان کاسد. خواستم تا به طریقی کفاف یاران مستخلص کنم. آهنگ خدمتش کردم، دربانم رها نکرد و جفا کرد. معذورش داشتم که لطیفان گفتند، در میر و وزیر و سلطان را بی وسیلت مگرد پیرامن، سگ و دربان چو یافتند، قریب این گریبانش گیرد آن دامن. چندان که حضرت آن بزرگ بر حال من وقوف یافتند، به اکرام درآوردند و بر مقامی معین کردند. اما به توازو فروتر نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم گفت، الله، الله، چجای این سخن است؟ گر بر سر و چشم ما نشینی بارت بکشم که نازنینی. فلجمعه بنشستم و از هر دری سخن پیفستم، تا حدیث زلت یاران در میان آمد و گفتم چجرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می‌دارد. خدای راست مسلم بزرگواری و حکم که جرم بیند و نان برقرار می دارد. حاکم این سخن را از این بپسندید. و اسباب معاش یاران فرموند تا بر برقاعده مازی مهیا دارند و معونت ایام تعطیل وفا کنند. شکر نعمت بگفتم و زمین خدمت ببوکسیدم و عذر جسارت بخواستم و در وقت برون آمدن گفتم چو که به قبلی حاجت شد از دیار وعید رواند خلق به دیدارش، از بسی فرسنگ، تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچکس نزند بر درخت بیبر سنگ.